دوش می آمد و رخسار بر افروخته بود تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامی بود که بر قامت او دوخته بود جان عشاق سفند رخ خود میدانه است واطش چهره بدین کار بر افروخته بود گرچه چه می گفت که زارت بکشم می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود کفر زلفش ره دین می و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برف روخته بود دل بسی خون به آورد ولی دیده برید الله الله که تلف کرد و که بود یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه که یوسف به ذر ناسره بفروخته بود گفت و خوش گفت برو خرغه به سوزان حافظ یارب این قلب شناسی زکا موخته بود